چو 15 اپریل 1992 دانشگاه برکلی داشت چو واظی ویطاره این طاره کنده یه مقداری توی نسخه قزوینی دقت بکنید نوشته که برای توضیح مطلب رجوع شود به حواشی آخر کتاب من نسخه که داشتم چاپ اول بود مال سال 1320 چاپ شد. نوشته توی شوی شاید تو حواشی آخر که توی آخر که توی حواشی خدا را شاید نسخه من ناقصی ورق شمایش نیست رفتیم نسخه های دیگه تا نیست آخر که توان حواشی نداره حالا قضبینی که آدمی نیستش که مثل بنده نیستش که بنویزاد یادم بره که حواشی آخر که نمیشه که نباشه قصه بارد از این بوده که این بدبخت بینباه با وزارت فرهنگ اون روزگار یک قرارداد بسته که دیوان حافظ رو چاپ بعد وزارتون مثلا گفته که خب این چند صفحه میشه تو قرارداد بینویسن که کتاب مثلا چهارصد صفحه میشه چهارصد، نمیم چهارصد، صد چهارصد یک قراری توی چیز ظاهرم بذاشته یون هم گفته که خب فالا اینقدام میشه دیوده پنج مزار مطالبی نوشته خیلی مطالب مهمی بعد یه قسمت زیر صفحه شده اینا و کتاب تموم شده به مزار دیگه هم نوشته اینا رو به خطات زرین خط هم رو نوشته حسن زرین خطات دریجه که اون روزگار سال رو نوشته بعد مثلا شده 400 کتاب <تصال> چهار سر سر قرده لزدفه <تصال> ببینی میرزه که اونجا بوده گفته شما در پرونده محتویات پروندهشون میگه چون چهار سر سر بیشتر کتاب هر ندیرین چاپ کنیم من افتو سر بیشتر کنیم حالا اینم نمیدونست اگه یادش رفتی که یه جایی هم مثلا نوشته رجوع شاید به آخر آخری کتاب یه مقداری از این توضیحات رو گذاشتم کنار بعدهای که مجلی یادگار در اومد یه قسمتی از اون چرا که مرمون غزبینی ها. نوشته بود سلام، سلام نوشته بود و گذاشته بود که آخر کتاب چاهم یه قسمتهایش رو تایید توی مجلی یادگار یه قسمت رو چاپ کرد یه قسمت دیگهش اصلا به کلی چیز شد اون نسخه که زرین خط نوشته بود داده بودن به کتابونه مجلس و این نس این نه هوش یافت توپ کی می‌خواستین رو خطی منو زری خطی گفتم پس خاص کلا نظر ما اینه احیالا دیگه حالا از منشن نمیدونم که من در زمان قرازه است من 25 سال پیشه حالا چه شده من نمیدونم دکتر رومن تو کتابشون ایراث به این قضیه اشاره کرده که چی؟ همین که همه رو هوایی میگن به ایراث به قزویدی واسه مربوط نیست حالا عموماًم ذهنش متوجه این مطلب نبوده که عموان ذهنش توجه به این نداشته که این کار این نیست بیچاره بعد در صورت میگم اینه یه چین بعد وقتی یه چین گرفتاری های هست ولی با تامین این احوال یکی از یکی از مسائلی که اکیدن بهتون توصیه میکنه اکیدن اکیدن بهتون توصیه میکنه این از که حتما به عنوان آدم میگه مختصری هم اولین قدم میخواد از حافظ به دست بیاره این مقدمه من قضیمی بخونم حالا بریم سری دو دومین نکتر بگم حالا که مقداری بلاخره وقتی شما رو ما گرفتیم خوندن او این است. دفقه یاد چون باشه بنده حافظ شناس نیست فردوسی شناس هم نیست سعدی شناس و مولانا شناس و عطار شناس و برقبال شناس هم نیستی یه مختصری در حد یه دانشجویی که تو دانشگاه در عدد بیاد داشتیم این چیزا رو بخونه این چیزا رو خوندن و هیچ کار خاصی راجع به حافظ اشتحاد خاصی عملیاب خاصی اصلا نکردم و به هیچ وجه هیچ دعوی حافظ شناسی و سعدی شناسی و مولان شناسی و پردوسی شناسی ندارم این توجه بفرمایید که اگر اینجا سر این کلاس نشیب دارید طرفتون یه آدمی. که کنم که آقای شاوی میدونی تا کجا خونده بود این فرزن؟ قبله خونده در این قبله بحبه، بحبه، بحبه، بحبه، بحبه، بحبه بحبه بحبه بح خب بح. خودت بح بح. بح بح. بخون دیگه حالا، بلاخره قصده‌ی خود بر این خدمت دربیشان است، مایه‌ی محتشمی خدمت دربیشان است. منگ ازدت که ازدت که انگه که فلسمات عجایب دارد وقت آن در نظر رحمت دربیشان است. قصد فردوس که رزوانش به دربانی رفت منظری از چمن نزهت نز، در درویشان رزبان اسم فرشته دربان بهشت رزبان اسم دربان بهشت مالک اسم دربان جهنم حالا سرکار بنده که با دوبومیه شما رو نمیدونم حالا انشالله شما نه قلب آنچه همیچه می میشود از خرطوبه آن قلب سیاه است که در صبتشان صحبت یعنی دوستی و رفاقت این معنی حرف دادن خیلی تازه است. صحبت ده. یعنی دوستی به رفان سلام ب صحبت یعنی دوستی و رفاقت و اینکه حالا برداشتن الان در پارسی می چقدر با این لغت ها رو بر بریم دستکاری میکنیم بعد میگه نه عربی وخوا برریم بیرون. مصاحبه الان ما گذاشتیم منی اینترویو یعنی با هم صحبت کردن عرب خودش به می این میگه مفاوزه جای انترویو میگه مفاوزه بازار این هیچ، حالا این هیچ پاید مصاحبه و مصاحبت هر دوش، یکی دیگه یکی هش، وقف شده، که بست، یکی دیگه بعد مصاحبت در فارسی معنی دوستی و رفاقت در مصاحبت آقا رفتیم کجا مصاحبت یعنی معنی که تو فارسی مصاحبه یعنی دیگه کرده و اصلا اصلا صحبت معنی نیست در افغانستان نمی این نکته موسیکو شنید یا نه صحبت در پیش افغان ها معنی حماقوسیه معنی نزدیکی جنسیه پناهاری نزدیکی افغانی بگیه که دیروز خانون زیاد کم صحبت کرد تا که سرخ چون بعد که صحبت معنی دوستی و بفهم. است بفرمیم آن که پیشش بنهد تازه تکفرخشی کبریاییست که در کشمت در است از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی از هل تا به ابد فرصت دربیشان است. بله دولتی را که نباشد قمر راسی به زوال بیتکلوفت بشن و دولت دربیشان است. گنگ قارون که فرو رود از قهر قنون صدمه ای از اثر غیرت دربیشان است. غیرت پارسیش میشه رش. رشت به معنی حسد نیست رشت یعنی همین که شما چشتون ور نمیدارد زنتون مثلا با یکی بیش از حد گرم بگیره این غیرت و میگه که مثلا خدا نمیپسنده از بنده که در عین اینکه باید بندگی او رو بکنه به یک کس دیگری هم یه قسمتی از دلشن به او بده این غیرت است برق غیرت بده دو جهان بر زد که ان شاء الله میرسیم میبینیم اونه از دیه. توجه داشته باشین که این غیرت معنیش این است و پشتش هم رشک از انسانی همه صفات الهی اصلا اولا که از خورق‌ها بپرسید میگن که موجود که در حقیقت نموده، بود نیست موجود، یه چیز است یه چیز است و موجود هیچ صفتی از خودش نداره اون موجوده که صفات خودش رو بعضی از صفات خودش یه یه جلوه‌ای از در موجود تجلیده اینا اگر که یعنی از اون طرف میگه که ما هرچه صفت در امون هست اونا رو از مبدع گرفت اما از این طرف اما ای بخواهی فکر کنید است که اگه آدمی زاد مثلا که گوزفند بود خدا رو این گونده بزرگور میکرد کمان این که الان برای خدا دست و پاونه تو قرآن این آیاتی آیاتی هست موجود محکم آیاتی هست موجود متشابه آیات محکم اوناییست که حکم داریشیم محکم معنی قرص نیست یعنی قایهی که حکم داریشیم آ... نماز بخونین روزه بگیرین چجوری روزه بگیرین چ... نماز چند دفعه بخونین اون از جهر زکات چقدر بدین آیات آیت... الاحکام، آیات محکم آیات متشابه معنی ظاهریش درست نیست میگه خداوند زمین و آسمون رو در شش روز خلق کرد بعد رو تخت دراز کشید ان الله خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش عرش انتخ دستاورد دراز کشید روی تخت اینا رو میگه که در خود قران میگه اینا آیات متشابهه و لا يعلم تعديده الا الله غیر از خدا هیچ کس معنی اینا رو تحویل این رو یعنی معنی درست اینا رو ندید برای حقیقت این است که به هر حال این چه از خدا آمده باشه چه از ذهن پیغمبر آمده باشه اگر خدا فرستاده و هر حال برای بشر فرستوده باید یه حالات بشری داشته بشر هم فکر کرده که طبعا حالات خودش هم دیگه راه دیگه‌ای اصلا وجود نداره تازه وقتی هم که می‌خوام خدا رو تنزیه بکنیم بگیم ذات پروردگار منزه از این منزه از اون منزه از اون این درش نیست اون درش نیست باز هم صرفاتی که از خودمون بعد میاد بهش نمیدیم دیگه دقیقا، میگیم، ذات از این چیزا مبرره هست، از ما هیچ راهی جز این که با خودمون به سنجیم نداریم ما فانی هستیم، خب، دل میخواد که باقی باشیم 100 درصد نمیتونیم، میگیم، پس ذات پروازگار باقی خب، بگذاریم، بخنیم دولتی را که نباشد قم از آسیب زبال بی تکلیف بشن دولت درویشان است. جنج قارون که فروم می از قهر هنوز صدمه ای از اثر قیلت درویشان است. ای توانگرد ما فروش همه نخوت که تو را سر سم... نخوت بعدم یه مکس کوچولو بکن ای توانگر ما فروش همه نخوت که تو را سروزر در کنف بهمت درگیشان روی مخصوص که شاهان به دعا می‌طلبند مذهرش آینه‌ی طلبت است حافظ اینجا به ادب باش که سلطانی و ملک همه از بندگی حضرت درگیشان است حضرت یعنی مجلس این که میگن حضرت عباس و حضرت عمام زندابدین یعنی ما آقا که قدرشون بالاترونه که ما خود برای اینکه در صحبت کردن طرف حق طرف مکالمه شدن آدم باید با کسی مطرح مکالمهش که همسر او باشه بعد مثلا برای شاه که آدم پایین، رعیت پایین حق نداره به اون حرف ما حرف بزنه مگه او بیاد بهش حرف بزنه جواب او وقتی خطاب به شاه بخواد بکنه میگه که مجلس حالا حضرت، بندگان حالا حضرت، جناب، جناب بینیم با آسطانه در آقا، حضرت یعنی به مجلس آقا، ما عرضمون در مجلس آقا میکنیم، که خودمون که قابل نیستیم که رو در روی آقا اسمون هر حضرت و این مجلس <تصح> بعد بنده آسطه احلام که در این سلطنتش صورت خاجگی و سیرت زرگیشان بقی آصف که میدونی وزیر سلیمان بوده را چون او اصلا حرفی نمیسنن ظاهرا این غزل در مده خاجه جلال الدین توران شاهد که ظاهرش صورت خاجدی داره ولی سیرتش سیرت دردش غزل بسیار بسیار زیباییست که بلاستی که تو بلاده قشنگ این غزلی که یه چند کلمه در آخرش تکرار میشه، اینو بهش میگن مردف اون کلماتی هم که تکرار میشه، بهش میگن ردیف درویشانه است، ردیف بعد خدمت و رحمت و نمیدونم نوزهت و اینا هم است حرض کنم که مطلب دیگری که اینجا داره، البته همش خیلی حرف میشه زد، اما بیشتر بسیار بسیار زیبا و بسیار بسیار بلندش بلندترین شعر این قزل از کران تا به کران لشکر ظلم ولی از ازل تا به اول فرصت داده شده کنم که قارون رو هم که قصه میدونید اون چه شاید ندونید اینست که این است که عین این قصه در خود قرآن آمده بدون اسم قارون و قارون پسر عموی موسی بوده و مرد بسیار توانگری بوده البته به اقراق گفتن که چهل چطور کلید خزانه های او رو حمل می کرده و چه و چه و بعد هم موسا گفته که آه حق و حساب دینی تو بده چیز نکن این کارهایی که بده نکن چه بکن چه نکن خلان اینا گوش نمی‌کرد و بعد شروع کرده بود تحریف و بعد تهمت حتی زده بود به موسا او کرده بود دوی کارهای ناشای در جایی که نمی دونم به دعای موسا یا به قهر خدا و هر حال دعا میکنه که خودش با گنجش در زمین فرو میره و میگه که تا بیامت همجور میره گنج قارون که فرو میره و از قهر هنوز این تصریف شده این با گنجش خودش با گنجش در زمین فرو رفتن و همچنان رفتن. در رو رفتن درویش اصلا یعنی بیچیز، اوله همه درویشی یعنی بی چیزی و این درویش به صورت به صورت درویز و دربیش با خواب محضوله آمده اش این کلمه درویز همون از که ازش کلمه دریوزه ساید به معنی گدایی. و اولی که کلمانی درویش در عدب و فارسی به کار می‌روه به معنی بی و بی چیز. این اینکه بعد لیم. به متصبفه طور کلی بهشون گفتون می‌شه فقرها و این تعبیرست از قرآن کریم. برای اینکه در قرآن کریم آمده است که دوستان از هم دوله آدف ندارم تحتشن، هم ما پارکنیم هستش. ن از که می‌فرماید که یا عجب میگه این مردم، شما، یعنی همه این مردم نیازمندید به خدا و خدا بی نیاز و است و درویش ها میگن که ما فقرهاییم یعنی نیازمند به خداییم اما این فقر، مسلک فقر دولت فقر خدایا به من ارزانی دار و نمیدونم اینا به هر حال آدم هر قدرم در دنیا توانگر بشه و بی نیاز بشه نیازش به خداوند که کم نمیشه به این دلیل آمدن لفظ درویش رو به معنی کسی که این احساس نیاز رو میکنه و نعمت دنیا او رو از این حالت خارج نمیکنه گفتن فقیر یا گفتن درویش و بعد این مفسد رو گفتن فقر ملازم میکنه و بعد درویش به معنی صوفی در آمده و بیکار در حقیقت مفهوم اصلیش هم مفهوم هستی فقر ما هر ثوان که الانم هم همینجا جلال الدین تربانجا میگه صورت صورت خاجی است، زیادتش دیدت در نشانه و این درسته یعنی دربیش در حقیقت آدمی نیست گفتن در بسته ها آمده گویا فقیری فرقی بود یه مرد درویش بوده میگشت شهر به شهر خیلی عزم خاص با اونا چا گرفته میشه میگشت خدمت صوفیان بزرگ می‌کرده اینا و از این شهر، اون شهر میپرسیده که فلانجا کیه، اونجا جنیده، اونجا شبلی، اونجا بایزیده، اونجا ابن خفیف، اونجا کیه؟ میرفته که اینا رو ببینه از محظرشون بهرمند بشه، میگه مثلا در فلان شهر دوده دستم، فلان آغاز. این میاد به اون شهر رو نشون آقا رو میگیره و حالا دوستختی، یه واقع منتشه های شویمده ازش مثلا اینا میاد و میگه خونه پلانی اینجا برای نشون میدن و میره اونه یه قصق اصلا سهر جنبی یه چیز مفصلی میگه ما مجید کار نداریم این چی چی چی چی حالا که اومدیم بگه هر تا اینجا بریم ببینیم میگه منزل پلان علیشا و غلیشا اصلا اینجاست میگن بله بفرمید تو رو تو سرسرا و از این سالم و اون سالم و از طبقه و اون طبقه و از اونو تا جایی خیلی مجللی میشننش رو آقا میاد آقای بسیار منظم مرتب تو کشیده خیلی با لباس تمیز قشنگ و فرد حسابی متعین متشخص میاد و سلام علیکم و اینم با پر از این کار سلام علیکم میشن و جا سلامتی و خوب داریش از کجایی میگن جا هستم که یکی دی دی دیدی که یکی دیدی بله میگه شهر ما رو دیدیم که نخیر نایدم من همینجری آمدم صاف من هم خدمش. میخواپخش بریم شهر بگردیم من شهر رو تو نشون بده. داخلش هم فهمش رو آغارم گرفتم از این و از اون و از اون مثلا میگه این دروازه مثلا فرض کنید که تو تهرونه میگه اینم دروازه بخارا راه اینقدر زیاده و اون دروازه نیشابور دروازه کجاست دروازه مثلا فلان بعد اون بابا میگه که ای عجب در بخارا مثلا درویش نمیدونم فلان من دلم می‌خواست که پر حضورش برسم درویشت سیاه اون آقا میگه که اتفاقا منم سال هاست که آرزوی دیدار ایشونو دارم و اگر موافقت کنی با هم بریم. میگه چه بهتره میگه خیلی خب پس بریم آقا میگه بریم میگه قربان اجازه بفرمایید من انتشا و چشمی پوستافت من خدمت شما درشتم برم بیارم در خدمت میگه مردی که تو که انکار مردان خدا رو میکنی تو ندیدی من قصرم اونجا گذاشتم دارم با تو میان برید. تو از ستر اون پوستاخت نکبتت نمیتونی بگذاری تو چه درمیشی هستی حالا مسئله واقعا اینه اساس قضیه این نیست یادن بینس نشه اساس قضیه اینه که مهره این بینس تو دلش نباشه بلیه خدا بهت دادی بینس توارشت نشه یعنی لباس شکر که رو خوب چه رو ولی اگر فکر کنی که دنیا همینه و ای فکر کنی که اصلا آدمی زاد خلق شده و که این کارا رو بکنه، اون قلب این, این اصل صورت خاجگی و صیرت دربیشان اینه خب بگذاریم بو به آقای صداقتان بدام ظرف تو دل مبتلای خیشتن است به دام زول دل مبتلای خیشتن است بکوش بغمزه قدینش سزای خیش تن را بکوش بغمزه که این از که این اش قضا یه خیش تن بکوش بغمزه که این اش سزای خیش تن است یادت زداست برایت مراد خاطر ما به دست باش که خیلی به که خیلی به جای خیش به دست باش یعنی آماده باش در از دست، برایت مراد خاطر ما، به دست بب اجالت ای گت شیرین دهن که همچون شم شبان تیره مرادم شبان تیره مرادم خنای خیشتن هست چرای، چرای عشق زبی با تو گفتم ای بل مکن که آن گله مکن کاما مکن اون گلدندان برای خیشتن به به را برای خیشتن و سوام نشه که یه برای نه به را برای خیشتن اون طرف میگه رائے ارشد یعنی مشورت کردی که من عاشق بشم یا نه گفتم نه برای اینکه اون گلدندان خود رائے مستبد خود رائے بفهم به مشک چین و چگل چگل چگل به مشک چین و چگل نیست دوی گل محتاج که نافهاش زبند غوای خیشتن بله این نافهاش هم اگه سرهم نشتن برحال این ناف و جمع ناف نیست ناف هست درست, درست خوندن البته ایشون ولی یه وقت براتون اشتباه پیدا نشی که اگر سرهمه بخوند نافه هست نافه هاش بله مشک ناف از نافه گرفتیم شوید بله من رو به خانه ی عرباب بی در که گنج آفیتت در سرای خیشتن از به سوخت حافظ و در شرط بازی او در شرط عشق بازی در شرط عشق بازی او هنوز بر سر عبد و وفای ششت عرض کنم که این یکی از بیت که که تا از دو یکی از غزاله است که دو تا بیت شاخکار داره چه یکی داره من تحلیل جوزی ازش پارتون میکنه یکی هم بیت میگه به جانت ای بوت شیرینده هم که همچون شم شبه تیره مرادم قناه خیشتن قسم میخوره به جانت معشوق و قسم میخوره به جانت ای بوت شیرینده که من مثل شم, شم در شب تیره خود فنا میکنه بیگه منم مثل شام در شب تیره خودم فنا حالا این قسم رو چرا به جانت خورده؟ خب میتونست باید به چشمت، به دست به ترتاپا به،, به هر چیز دیگری میتونی میتونست قسمده به جانت قسم خورده برای اینکه اون طرف میگه که من خودم فنام, فنام فنام از دست دادن جان اینجا حالا قدم دارم. بعد میاد این شیرین دهن. باز به جای دهن هزار تو صفتی که می‌تونسته بذاریم اختصاصاً این شیرین دهن به درد می‌خورده اینجا به دلیل اینکه خودش رو می‌کنه به شمعه شمع رو، مثلا شمع خونه متعیلین متشخصین رو از موم می‌سازه موم رو از اصل می‌گیره اصل یار شیرین مومه وقتی یار شیر موم ازش جدا کنن چیزش چارهش فقط سوختن حالا برای اینکه که اول از خود حافظ مثال میارم واسه تون بعد هم میارم روی کسان دیگه ارز کنم که یه جدا شد یه خنزل تنسه خانلالی 445 سکوی یار می آید نسیم باد نوروزی از این با در مدتهایی چرا به دل برد می جدا شد یار شیریند کنون تنها نشین ای شم جدا شد یار شیریند کنون تنها نشین ای شم که ما آسمان استین اگر سازی و اگر سوز این در زردش دوش نیم. این قصده سوختن شم از این جهت که انگبین از او جدا شده بهترین مضمونشو سعدی ساخته شنیدم چنین یاد دارم که چبی یاد دارم که چشمان نخوب شنیدم که پروانه باشم گفت که من عاشقم گر به سوزم رواست تو را گریه و سوزواری چراست به گفته ای هوا داغ مسکید من برفتن یا یار شیرید من چو شیرینی از من به در می روید چو فرهادم آخش به سر بعدم هم دنبالش میگه که من همین گفته هر لحظه سیلاب درد خرو می به رخصاق زرد که ای مدعیش کارتون نیست که نسته بداری است. تو را آتش عشق اگر پر به سوخت مرا بین که از خواب تا سر به سوخت تو بگریزی از پیش یک شو خام من استادم تا بسوزم کنم نرفته ز زشن... شب و همه شب در این گفتگو بود شند. به دیدار و وقت از ها جم نرفته ز شب همچنان بحری که ناگه بکشتش پری که رهی همی گفت و می گرا داشت به سر که این است پایام عشق پسر اگر آشقی خواهی آموسن به کشتن فرجیا بی مکن گریه بر گور مخدوم دود برو خوردمی کن که مخدوق این مضمون که جدا شدن اصل و شیرینی از شم و از موم و در همچه سوختن شم سالهای سال پیش از حافظ و پیش از سعدی در شعرهای متقدم اونا هم وجود داشت و من اینا رو یاد داشت کردن توی یاد داشت هست متأسفانه و حافظه زنگ زده به خاطر ندارم ولی یاد داشت کردن و توی یاد داشت هست این مضمون وجود داشته برابر قطعا وقتی حالا مطلب اینه که وقتی که حافظ میگه که ای بو تشیرین دهن و بعد خودش رو تشبیح میکنه به شم نظرش به این مضمون سعدی و دیگران بسیار و خودش که اونجا دیدین که میگه همه اینا هست میگه به جانتی بطه شیرین دهن که همچون شم شبان تیره مرادم بنای خیش یکی دیگه <تصفح> خب ما اینو گفتم یعنی نوخانداری که بود شیرین من اینجا شیرین شیرین میشه اصل غذیش شیرین نیست یکی دیگه هم به مشک چین و چگل نیست دوی گل مختاج که نافه هاز به بند قوا خشتند گل برگشت چین و چگل چین هم اسم مملکت هم شهر و مملکت هم هست شهر چین که میگن ایران شهر یعنی مملکت شهر چین که میگن یعنی چین چگه دو, دو شهرهای هم حسین خیزه یک دو شهر هست که نمیدونم برای تون گفتم یا نگفتم نگفتم مثل اینکه فن. ولی پس من بهتر اسم این را بنیشتم هی این های بر میخورد توی عددیات و نمیدون چیه ن. آتو کوتانتی دیشاتا. شهرهای دیگر این اغلب در دیار کفر واقع بوده می‌رفتن، زن و چه مردم حسیر می‌کنن، میوردن، به کنیزی و غلامی در بازار می‌فوردن روم سقلاف سقلاف معرب اسلامه، این نجازه اینا همه دلاد کف بوده می رفتن، بچه‌ها و زن‌های و مردم می‌گرفتن می‌اوردن پسرها رو برای سپاهی‌گری و دخترها رو برای مجوه‌سارایی و رقاصی و ساقیگری و همثال، اینا به خصوص تر مال چین و اونجاها که خیلی ظریف و نازوک مازور و خیلی می آوردن و اینا رو تربیت می‌کردن بعد به قیمت گروم می‌فروختن، این شهرها رو بهش میگن چهرهای حسنخیز برای اینکه زیبایی یعنی صورت زیبایی که در نظرگاه مردم بود زنش کسی نه تنان نشون کسی نمیداده اسمش هم بردن یه چیز میشدش ولی تو همین دوره ما صدوسن و باقل تو محل ما صدا میکنه حسن آقا بچه هم نهش میچنه مهموران اسم پسر بزرگی کنی بوده میکنه صدوسنی میچنه بچه نداشته بره لره خانم اسم چی بردن صحیح نیست بنابراین اونی که میوه تو مجالس و میزد و میخوند و می و می میداد و نمی کرده کنیز زرخرید اینه که همه دلبرا همه معشوقایی که در شعر فارسی چون برده میشه مال چی و مال دمه اینجاست میگه که سعدی میگه ندانم از چه گل است چه گل صاف ندانم از چه گلستان نگاه یغمایی که خط کشیده بر اقساخ نیگوان چگل در ضمن چگل در غلایت خوتن بودی که آهوی مشکین هم اونجا بوده بنابراین شهر چگل اختصاصاً هم خوشگل سادر می‌کرده هم مش. هم. این هم در بیدن در بیدن چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ ولی به این صورت در شعر پاسده پسار اسمش او یاد ما کمار کمار گووان کومار یاد ما ما ختن شاه رو شاهد کشمیر فتنه چین شو دخل لو آفت یگما خم خم و چین چین شکن، چکن سر زلفش کرده ز هر سوفدی چلی با. عرض کنم که <تصح> اینا اسمشون میاد میگه بوی گل به مشک چین چگل محترج است چرا مشک از نافه میگیرن. میگه نافه اون از بند قباش سابق لباس در تایی سه هزار سال، در تایی چهار هزار سال یک صورت داشته، اون قوای کروسی قبای ایرانی که دیدین را بود. تو چند سال می‌شهد، الانم هنوز رنگ آبی اون کرباست، رنگ توقعی که شاورزده از دور ساسانی و قبل ساسانی و هخوانشی و ماد و همینجور رنگ کردن می پوشیدن فکر کرده که خب این اصلا نمی‌دونسن چه دلیله یا فکر کردن که خب این ها اینطوری رنگ اینه دیگه. رنگ کشاورزان رنگ لباس کشاورزان آبی بوده رنگ لباس مובدان سفید بوده که هنوزم هست و رنگ لباس سپاهیان زرد بوده و این همین جوری شکل سنت بوده قوا کروسط آب باقی قومم، اینه همون قبار رو درست میکردن و پارچه های دیگه، پارچه های فاخر عیوناب، ترمه، شاب، چار کشمیر، هرچی بوده ولی دوخت همون این، دو تا یه بند هم داشته اینجا بعضی خانوهای دیدن پارتوهاشون داره این بند اینجا داره که می‌بندن این طرف بعد میکرم، میکرم باشه بند دیگه مندم وقتی میخوام مشینم، بند باز میکنم، میشینم چه زن بود به لباس میگفتن جلوش باز بوده و جامه و لباسی میگفتن جلوش بسته بوده برای که پیراهنا علاتین هموار مرداست ها، زنایی که اصلا داخل آدم نبودن چیزی لباشونو اینو نوشته یا چیز کنه یعنی نمیشد اصلا توی حرم بودن خیلی کم اصلا لباسا ها را حرف زدن مگه تو داستانهای عوام و اینه چیزای ازش پیداکن ولی یعنی اصلا هر کردن راج اینا صحیح نبود یعنی درست نمیشه ولی اسمت ناموس و آقا سرکار داشت نمیشه پس شنر دلیلش این نبوده که آدم نبودن شنر دلیلش این بوده که نبوده که نبوده چون نبوده که اصابم واقعا جزه فعله نخه می گفت ازار جا گفتم من فرق من فرق مرسالاری فرق بوده دیگه ولی در ضمن اینه بهتون بگم ضمن کار اینو بگم که پشت پرده همیشه زن قدرت اصلی اداره کننده بوده بخصو اگه داشته. یعنی همیشه این زندگی اگه زن دست برتر رو داشته مرد رو سوار بوده از پشت و هم مرده دست برتر رو داشته که معمولاً یعنی اجتماع ده خب مرد سوار بوده. اما اصل مطلب بیااق تو کهفاات و همین الان هم هست همین الان هم توی خونه نیست که آخر آقا میزنه توی خونه گ سرخر قانون میزن در همین جامعه امدی یعنی نه ما ایونی که, که حالا اون نه تو همین شامه‌ی خود ما هم به قول یه تعبیری در اینجا، حتما به رسیده آدمی که خیلی محتیزنی میگن زنزلیله یعنی <laughs> یه جلو زنش حرف مزنه، هر چی بگه این چیز نمی‌کنه رو حرفش هر سه مثلا اینا مربوط به خود اون اثر حضوردی خود، اون آقای خامد، جانه جان کردن که یعنی پیران برقرار کردن تو پایین یعنی در هر جهتون تو پایین جامعه تبدیل بشه قباظ بستم چون این احساسی که مثلا در ادبیات پارسی مثل یا در اصولاً در تاریخ نسبت به زن داشتن از چه سنی بیشتر دیده شده اینا در دوران‌های آخر از وقتی که مرد رهبری اقتصادی زنه به دست که اقتصاد نونشو داد بعد هر جوری خواست راش بود تمام روزی هم که زنی که، زنی که در هر جور حقوق اسلام پخ، غیر طالب خانم اصلا پول داره دختر بتاییر مشخص شازده هست، و چشوارش دو سرش میدرسه، نفست هم دست باید ترده بگیم، هرش نداره اصلاً. این حرفا که نره روی کاغذی روی کاغذ چیزایی هست، من نمیگم بده اما روی کاغذ که هر حق گروه کسی بدن یا ندن، چقدر ما همون حق رعی داریم در جمهوری استفاده اون زن و مرد هموقع که مردم از حق مردی استفاده اون زن ها و... بسید بله، بگذاریم، این حتی چشت توی کلزه نیست به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج که نافه هاش ز بند غبای خوشتن بسید بل. بله، ما که، بفرمیم مخلوق باشه؟ که اینا به هر حال نسل قالب چیزا خود محلی ها بوده. این هر ماله درباره مال متعیمین و این جامعه ایران و جامعه اون روزگار همه دنیا جامعه کشاورزی بوده و مردم در دهات پراکنده بودم شغل اصلی هم کشاورزی بوده اونام نه داشتنم چه این یکی دوم این که در دستگاه های اشرافیت از دربار خلافت میگی تا دربار شاهان تا سایر جاها اینا بودن و کنیزان بسیار سیاد پادشاهان بودن که مادرشون کنیز بوده بسیار خلفا بودن که مادرشون کنیز زرخرید بوده خود ها بودن که پدرشون ب... ب... ب... تو بازار فروختن که محمود غزنوی محمود غزنوی سوای تکین پدرش تو بازار فروخت خریدارش هم با یه غلام سامانیام میذونه التکین که آزار شد بعدم این راد سپساله رو پراسان شد محمود اول کسی که اسم سلطان به خودش گذاشت. شد بردگی و کنیز خریدن و کنیز بروختن و تحدیت کردن در ممالک اسلامی هیچ ارتباطی و هیچ شباهتی با بردگی اروپا اینا اصلا نداشت. برای که فقط بردر رو مثلا میپسند توی کشتی پارو مثلا جای اسب و گاب میبسند شد گاباها فکر نمیکن، بی‌شعوری بوده اینا فکر نمیکردن که ممکنه از وجود این یه فایده بهتری آید بشه یعنی شیش تا گاه ببندم به گاه بوهن یه دون از این بذارم پوسترشمون برونه نمی‌کرم به حال اینکه در اسلام خیلی نگم تا سلطنه راه‌های متعدد برای آزاد کردنشون بعد هم راه ها بعد هم همه همه‌جور چیزها رو می‌رسیدن و متاسفانه بعد اینکه فروش بردگی لرف شد دیگه حالا نه خود آخونده و دلیل اینکه فایده عملی نداره در حوضه‌های علمیه کتاب، کتاب بفهم از به خرید فروش بردگیر را درس نمیدن روزالای بیرون از حوضه‌های علمیه هم که هیچیش ولد نیستن، این یکیش هم ولد نیستن در نتیجه درستی و دقیقی راجب احسان این کار و وضع این کار و, تاریخ، این کار و تاریخ، این کار نشده. و این جای این هست مثلا یک کسی فرس در اینجاها دکترا که میگیره تاریخ یا جامعه شناسی یا امثال اینا راجع این مطلب مطالعه بکنه اون بخشی از دروتیگی هیچ کدوم از علمای دینی توجه نمی به دلیل اینکه موضوع نداره و دیگران هم که این خطا نیستن اینو برو دنبال و از کتابا در برو و ترتیبش. یکی از معاخذ بسیار جالب توجه در این زمینه کتاب هزار و یک شب در هزار و یک شب داستانهای بسیار راجب کنیزان نمیدونم که عاشق شدن مالکش به او بیشکی پوندن از او طرز تربیت این کنیزا مدرسه هایی که داشتن مجالس مباهیستهی که برای تشکیل میزن که میشن با وزرکنی علمای اصلشون با خیلی زیاد کتاب هزار و یک شب در این حال که جالب و سرگرم کننده است و اگر نخوندید این کتابو اکیداً بهتون توصیه می کنم که دور بخونید خیلی خیلی مطالب روشیده است. میذارین کارمون رو کنیم یعنی نه هم یک لحظه بویژه که خیلی تعبیر که علما و فقها اخیراً زیاد مورد بحث نمیگن اشاره در تایید عملش هست در این که آقای خومی زاده تو دینه موضوعش در احکام معاملات سلف مثالش رو بردازید. بله برای تنخیر ننکرد، نمی‌کنند، نمی‌کنند، نمی‌کنند، کنار برای این گنج خیر؟ نه یکی که برای به دست آوردن گنج آخیت این اشاره به است که این قصه‌نا رو می‌کنم قصه‌ی زحمن. زحمند میگن زحمن اسم خانه‌ای بود این خانه اسمی زحمن در دمشت و مردی مالک این خانه بود بسیار تغییر و بدبخت و مفروک نوم به نونش نمیسید و تشنه بارها خواب که تو برای گوشایش کارت باید خوش بریم مثل اونجا گیره از پارت باید هلاخره وقتی تو که ساعت دفعه مثلا این خواب و دید که می بوده سخن درازی نمیشه پاشیم بریم اونی جمع که قرضی قولهی بدبختی رو افتاد که بیچاری که رفت نیست حالا نون نداره بخوره جای نداره بخواه ویلون، سرگرنون، بدبخت توتیابون میگشت داروغه پلیس اومد برکه کی هستی تو شبه هم که از یه ساعت مایند کسی بیرون نواد باشه در قدیم این اصطلاح بگیر و ببند از روزگار قدیم هم مونده بود برای حکومت نزد. میاری، کی هستی، کی هستی؟ میبرنش لخره بعد اون رئیس پلیس میگه خب چی هستی؟ والا من، آدم بدبختی هستم، نا. اله، مثلا دمشقم، اومدم، غریب این شهرم، چیزی هم ندارم. میگه خب، چرا اومدی؟ میگه که والا من، پسر میگه. اینقدر خواب دارم، اینقدر مکرر شد ک و عجب مرد عقلقی هست <تصفيق> تو بلنشتی خواب دیدی؟ من صد دفعه خواب دیدم که خونه ای هست به فلان نام به فلان نشون در شهر دمشت دوش گنجاله من چا که‌ایم سردنم خنگی می‌دو گرسم خواب تو برکه احمق همچه باش نگاه برونی خونه‌ای نشونید خونه‌ای خودشه میگه بل می‌گه حالا بگه اومدن من این خریعت رو کردم اینا و میخوای من می بر میخواید چیزی چند برمیگردیم برمیگردیم یاد تو خونش و اون گنج رو در همون خونه در میاره این قصه از قدیم بوده قاعانی معروف میگه گنجم در اون خاطر رو گنجم در اون خاطر رو من در دنشق در سرگشته بی سبب چو خداوند زحمن هم زحمن هم این گنج و آفیت در, گنج در سرا داشتن و جایی که نرفتن و اینکه گنج تو خونت اینا اگر صرف بود؟ خیده کردیم؟ خیده بردن فی به veut یار من هست وز آدم من هست چشم سیح و مجیان او دل بردن خار من است اینی خود یه سنگ بیشتری در, در شرم و تکه بکنی شرمزان چشم و بادش مجیان هر که دل بردن او magnificent در این کار با ساربان ره کتاب، ساربان ره به در غاز مدر کانسرکون شاخراخیست که من دلگه دلدار با، بنده تالعه پیشم که در این بخت وقتا پشت آن لوبی سر منست قریدار منست بله قبله اطر گل و دلپ عبیرفشانش فیده ی شمز بوگ شمزه خوش من است با بون تن تو باغ تو از اشک عشق. اشک تو پرناه من است شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود ند که که طبیب دل بیمار من است آن که در قضل نکته به حافظ آمون تو این تخن نادر گفتار من ملازم میکنید؟ یه یار من به من قضل یاد میده ارز کنم که تبله باهای تشبیح یعنی مثل تبل یعنی بوتی توش خالیه درشن نازل که هم بوتیه که دو پنه هتری بوده تبله بپنه مثل هزوشون که نه نه نه نه قوتی قوتی دو کنه عطاری دانا چون تبله عطار است خاموش و هنر و نادان چون تبل غازی است بلند آواز رو میان تویی تبله <تصفح> یعنی با یای تشبیه یعنی چیز شبیه تبل اولا به اول فوق العاده قشنگ لعله سیراب اولا یعنی که ابورنگش در نهایت قشنگی و درخشندگیش جلعل سیرا لعل سیرا به خون تشنه لب یارم بعد چون لب یار من تشنه خونه از به دیدن او دادن جان کارم این یک دوم این که ارز کنم که لولی لولی که همون کوهلی خودمونه و این کوبی چیزهای خیلی زیاد داشته اسمای خیلی زیاد داره و در پرنگی هم اسمای زیاد داره در چیز هم داره غربتی، نمیدونم غیرشمال، قربیلبند و همثال اینا و کولی و لولی ما حالا لولی رو کار داریم در زبان فرانسی و انگلیسی. لیر یعنی چنگ اید. چنگ اصلاً ساز یونانی زید و در یونان و زبون یونانی و هم در خط روسی این وای که در فرانسیبش میگن Y یعنی ای یونانی Y که از یکس و Y که در همتون خوندی ایگرک یعنی ای یونانی این وای در یونانی و در روسی اون خونده میشه بنابراین این لغت اگه به میشه لور لیر لیر تلفازه این بچه. لوری در فارسی یعنی چنگ زن این دیره، چند؟ ره به لام بدن شده، این که اینکه در های باستانی لام اصلا نیست، تمام لام شدش ره چنان که در گول، مثلی که گفتم که هر چیز عوستایش بوده وریطه وریطه شده گول، ره و لام بدن میشه لوری شده، لولی، اصلا یعنی چند زن ولی برای اینکه یکی از کارای این کولیام، زدن و خونده هم بوده در قدیم بعد نه عشقگری رو کرشمه و همونطور از هستن لوندی و رد و, و این بازی رو چون داشتن کم کم این لولی شده معنی دیار عشقگری بنده خیش هم که در این قهط وفا عشق آن لولی سرمه خریدار من است و لولی چیزش اینه ایتیمولوژیش اینه ارز کنم که بله؟ به چی؟ نه، نه اصلا. کنم لوتی کلمه عربیه و مربوط است به قوم لوت و نه هست کنم که شمه شم یعنی بویدن هی آخرش، هی مره بهش میگن در عربی ضرب یعنی زدن ضربه یعنی چی؟ یعنی یه دفعه بویدن شم یعنی بویدن شمه یعنی یه دفعه بویدن مره یعنی دخته یه دفعه های این ها البته عربی ها جز های فارسی نیست اون تبله هش فارسیه, فارسیه. تشبیه فارسیه مثل چشمه یعنی مثل چشم به اعتبار زایندگی و یعنی مثل گوش به اعتبار کنار قرار گرفتن پایه یعنی مثل پا این یعنی هی تشبیه اما دسته یعنی چیزی که دست میگیرم، اون هی نسبت که دیگه دسته مثل دست یعنی چیزی که دست فعب حبله یعنی مثل حب بنابراین هی معره یه دست عرم میگه که معمولا مال کلمات عربی هم هست چون که عربی مثل ضربه سهر دیگه معلوم چیزی؟ این برای همین همین و, و عبیرفشان, مقصودش عبیرفشان و گله صحیح، یه گلو، گلو بوی خوش، نه همه، یک شمبه از بوی خوش عدتار من کنم که باقبان همچن نصیمم از در خیش مران اون میم در حال مفرولیست یعنی همچنسیم مرا از در خود مران کاب گلزار تو آب اینجا معنی آب و رنگ و ترابط و زیبایست کاب گلزار تو از عشق چوگرنار مست شربت خند و گلاق اینو برای تطبیت قلب و اینا معموله. قند و گلاب، یعنی شربت گلاب میدادن و حافظ میگه قند آمیخته و گل نه علاج دل ماست میرسیم حالا بهش انشالله قند آمیخته و گل نه علاج دل ماست ای چند بیامیز به دشنام جه. چون گل تلخه آخر گل مزاش تلخ میگه شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود فرمود فرمودن یعنی فرمان دادن مثل کلمه فرمان است فرمودن یعنی دستور دادنه و من یادم که توی دوره بچگی من وقتی که این گوجه‌های گیلانی اینا رو می آوردن دوره انتوافا داد زن به نبات گوجه حکیم فرموده گوجه حکیم فرموده یعنی دستور بده حکیم فرموده گوجه یعنی دستور دستور, دستور. شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود نرگس او که طبیب دل بیماره ببینید این زیبایی این تا چه حدی بعد فکر این اموال این بفرمایید میگه منو مثل نسیم از درت بر نسیم از در باغ میره خودش میگه منو مثل نسیم رد نکن هاوزه بله گلاب نداریم آب یعنی گفتم یعنی رو و بخون آقای سفرم بوزگاه نیست که سردای بوتان بین من هست برم این کار نشاط دل غمگین من هست دیدن روی را دیده جنبین باید بین کجا مرتبه چشم جهان بین من هست یار من باش که زیب فلک و زینت ده از مه روی تو عشق چو پروین منم تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد خواب را ورد زبان مدهت و تحسین مدهت مدهت و تحسین منم مدهت دولت خدا خدایا به من ارزانی داد کین کرامت کرامت سبب حشمت و تمکین منم من اینجوری میخوندم واسه فهم گفتم دولت فقر خدایا به من ارزانی داد قدرش رو میکرد دولت فقر خدایا به من ارزانی داد کین کرامت سبب حشمت و تمکین منم واعظ شهنشناس وا از شهنشناز وا از شهنشناز وا از شهنه شناس وا از شهنشناز شناس. شناس این عظمت او مَهون زون که من زلگه سلطان دل مسکین من هست. رو تو کم کن دل من جای سلطانه تو بس من بالا چاوی هر ندری بکن بله یا رب این کعبه مقصود تماشا ده کیست که مغیلان طریقش گل و نسرین من است حافظ از اشمت طرویز دیگر قصه نخوان که باش جرعکش جرعکش خسروب شیرین شیرین خسرو و شیر شیرین شیرین صفات خسرو شهادت اون شیرین ما خسرو شیرین ظاهران شاه شجاع شده گفتم برای اینکه متن خیلی زیباتر بده دوران سلطنش هم طولانی‌تر از باقیی که حال مده‌پر بوده راویتش با آفز خیلی خوب دوست واقعاً مده تو رو عشق تو، مده تو من چه بلکنه این اتواجه دست دیگه مخونم بکنه بخونم که دیگه بگونیم که سختی خیلی امر گفتن رو دست درمیده به شخص دیگه نمیگه نه نه, نه. نگو هیچ طرف کتاب نداره این به وایده میگه نه کی به کی میدینم به هیچکی میگه که اگر رفیق شفیری درست پیمان باش حریف حجره و گرمابه و گلستان باش چه باشه باش بعد میگه شکنج زلف پریشان به دست باد مده مگو که خاطر عشاق او پریشان ده فاطر راشو پریشان بود بود این گو اینجا طرف قطعات نه این هم هم بود واعظ شهنشناس من گفتم واعظ شهنشناس نه واعظ شهنشناس این عظمت گوه بو مفهور بود درست؟ خیلی من, من گفتم اشتباه اشتباه برگشت میشه چون بان قدیم که بلید اشتباه برگشت میشه من اخیر بشر آترای زلو خطاستی بکرموشش خیلی اخیر محل نسیان خانم معزی شما حاضری بخونید منم که گوشه ی می میخانه خانگاه من است منم که گوشه میخانه خانگاه من است دعای پیر موان ورد صورتگاه من است من پرانه چنگ سبو نیست چه با نوای من به, سحر به سهر آه اوزخواه من اوز آه نداره اونجا؟ این اشتر چه <تصفح> من به سهر گرم چنگ نیست چه با؟ نواهی من به سهر آه اوزخواه من این دلو. شما اینو برکنیم یا لطفا چشم گرم تر آمه چنگ سبود. شما نه زبون دو درست نمی گرده الان دیگه الان دیگه نمی چرا میره؟ گرم <تصفح> <تصفح> گرم <تصفح> چنگ سبو نیست چه با نواب ی من به سهر آه او من هست <تصفح> بله تو هر چیزی قانون،, قانون معروف اسپانیا ها رو این دیم تو تو قانون تلایی دارن اولیش اینه که هر چیزی خوبش خوبست قانون <تصفيق> اول ولی قانون دوم میشه قانون دوم اصاب کرد میشه تبصیره به قانون اولم اصابش کرد این است که هر چیزی خوب نیست هر چیزی خوب نیست خوبش کنیم تا خوب بشه مان سر میگونم ببرمیم از پادشاه و گدا فارغم به همدلله گدای خاک در دوست پادشاه من است از عرض مسجد و سال شماست زنخیال ندارم خمان. به من تیغ عجل خیمه برکنم مگر به تیغ عجل خیمه برکن بر نی بر نی یا بر نه همیدن از در دولت نرست خراغ است بله از آن زمان که بر این نهادم نه روی فراز مسند خرخی تکگاه منم است اگر چه نبود اختیار ما حافظ، برطریق رهدب باش مرسلم این مسئله ایست که همیشه مسئله جبر است یا که هیچ وقتا به ایچه نمی جای خانون تاریخ خالی که گفتم این به دلش کنیم بحث به جایی نمی قضیه همینه قضیه طرف خدا میگه که به این جهنم بینیم بهش می خود از یه طرف دیگه هم آخر این با قدرت خدا در تعاروزه دیگه قمی که هرچه هست گفت اگر خدای نباشد بنده ای خوشنود شفاعت همه پیغمبران ندارد چون احمد نبود و عبادت نبود و بر سر خف نوشته بود که این مقبل است آن مرد. پشترا. پیش از من و تو بر رخ جان ها کشیدند تو را نیک وقتی و نیک به بدبختی. اون حدیثی هم که نوشتم از سعید و سعید بن فیطنه و شفیق شغل و شفیق فیبت فیطنه. خو اینطوره این درست با قدرت مطلقه الهی قابل تطبیقه بعدی اون بهش جهنم چیه؟ این گناه او این که اختیار تو نبود ولی موجود وجود با،, با قدرت اینطور تطبیر نتونه که میکن عطل خدا را آدم به میزان خودش که نباید به سنجه ما مخلوق خداییم تحت امر اوییم خاص بهشت میبره خاص جهنم بوده به ما گفته این کار بکنید، ولی این کار بکنین شرط این نیست که بعد او اجباری داشته باشه که در برابرش خب هر کرمش اقتضا کرد بنابراین گناه میگه اگر چه اختیار ما نیست یعنی اونجوری ساخته شده ولی تو این تحضیتی نکنی؟ بره گناه از بره گناهی بر خدا نباد مثل بره بر. زپاد پادشاه و گدا رو الله، الله، اگر همان بگیم الله چرا؟ زپاد شاه و به همد الله گدای که در دوست پادشاه من. منم و خب، ارز کنم که این غزل بسیار جانسوز رو حافظ برای مرگ پسرش گفته و سهل غفاری حالا ما رو خود دارم نهمون کنم مردم و چشمم نشسته در خون. زگرگی مردم و چشمم نشسته در خونم ببین که در طلبت حاول مردمان چونم حاول مردمان چونم به یاد لحل تو به یاد لحل تو و چشم مست میگونت زه غم قم می یه که می خورم خونم ز مشرد سرکوب آقا به طرفت تو اگر تلو کند پاولم همایون است تکاویت لب شیرین لب شیرین کلام پرهاد است شکنجه تو ریلی مقام مجنون است دلم به جو که قدر همچه سر به دلجوی همچه سر, سر دلجوی سخم بگو که کلام لطیف و موزون هست ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی که رنج خاطرم از جور دور گردون هست از اون دنی که ز چشمم برفت رود عزیز کنار داون من همچه روز جیوونم اولا اینجا ببینیم نسخه خاندادی تحصیل کرده چقدر قشنگ داریم تحصیل خودش که نکرده ما نسخه هاستم توجه برمید به خاندادی نکرد. میگه که از آن زمان که ز چنگم برم روز عزیز یعنی بچه از دست دادم چنگ میگه برای که چنگ هم چنگال آدم هم اون چنگی رود به معنی پسر یه گفتم برای که زاد یعنی دختر رود یعنی پسر زاد و رود یعنی دختر رو بسیم یعنی میگن فلان کس اومد با زاد و رودش تو فرمائیم، بفرمیم فلان کس اومد با زاد و رودش زاد و رود، یعنی دختر رو رود پسر از آن زمان که چنگم برفت رود عزیز کنار دامن من که نار دامن من, من همچن روگ جیهون هست، برای جیهونه شاد شود اندرون قمگینم به اختیار که اختیار بیرون هست بی خودی طلب یار میکند آفه چون مفلسی که هر از کار گنج کارون هست با. بی خودی یعنی، یعنی بی هوش و بی اختیاری، بی ارادی. اول مردم چشم من میگه از گریه در خون نشسته. بعد اون طرف میگه ببین که در طلبت حال مردمان چون. بیاد یاد لعلت تو باز نو سر خیلی بهتره. میگه بیاد یاد تو بی چشم مست میگونت ز جام غم به لعلی که میخورم خون بسیار زیاد. و آفتاب و طلعت و طلوع و تاله همه اینا در یه بیت بوده از مشرق سر کو آفتاب طلعت تو اگر طلوع کند تا هم به حال لب شیرین کلام فرهاد فرهاد هیچ چیز صفات لب شیرین من از یاد تو هیچ وقت حال نمیتونم شکنج در دل عرض کنم که دور باده و دور گردون رو چه؟ دور باده به جان راحتی رسان ساقی که رنج خاطرم از جوغر دور گردون هست. از آن زمان که زر چنگم برفت و دیگه چیزی کنشد خب یکی از علما بخونه آقای گرامی تو بخون آقا ببینم خمه زلفت سهام از دو است. به جمالت جمالت بیکن حدیث قمدار است. به چشم شوکت او چند کتاب می‌گوید. دایم باعث من است. او فرید باو কই که بعد او رفت جان و از او باشو رامول قائم تو بس بکید اثر فشیلینن که دنبودو اون دردان دینا از این ترکیباتو میبینید که توی چیزای هر روزه ما اومده و خیال می‌کنیم که اینا رو خودمون بلدیم اینا رو گرفتن هم تو کار سحر آفرین مثلا کدار عاشق پوشی سحر آفرین سحر مبین ترکیب قرآنی است یعنی جادوری آشکار، جادوری آشکار سهرمو سهر بین، مال قرآن ارز کنم که به همین دلیل اون طرف که داشته موجز حسن راجب موجزه گوام میکنم که اگر بپرسم که موجزه چیه کسی میتونه بگه؟ موجزه؟ من قبول یک دادن دیدم شما دارم ورد ارز کنم که موجزه همه مردم میگن که عبارت هست از انجام دادن کاری که دیگران از انجام دادنش عاجز ولی الان در دنیای ما بسیار کسان هستن که کارهایی میکنن که دیگران از انجام دادنش عاجزن. از قهرمان سیرک بگیر تا تمام محققین دنیای کارکرده که قبیله نتونسن بکنن. الان هم باز بسیار کسان هستن که منحصر به فردن در دنیای کار میکنن هیچ کس دیگه نمیتونه ولی نمیگم ما معجزه میدونیم معجزه درست است. عبارت هست از کاری که مردم مردم دیگه از انجام دادنش آجز باشن به شرط دعوی یعنی بگه من پیغمبرم من فرستاده خودم معجزم اینه اگر اون تهدید تهر تهدی میده اگر اون دعوی هم راش نباشه معجزه و این شرط دوم ما اکثر مردم این تقریبا همین نمیدونه میگه جمالت معجزه حسنه است بنابر معجزه جنبه الهی داره میگه من فرستاده خودم اینا معجزه جمالت معجزه حسنه است لیکن حدیث رمزد سحر مبین است معجز با سحر هر دوشون عمل ماورای طبیعی و عمل خلاف عادت و عمل غیر ممکن ولی یکی جنبه الهی داره، یک جنبه احریمنی داره سهر، جنبه احریمنی داره حدیث غمزت، سهر مبین کمان و کمین تجریز ناقصه با همده چشم تو جان کهی توان برد که دائم با کمان من در کمین هجب علمیست، علم حیعت عشق چرخ هشتمش هفتم زمین است اینجا یه چند کلمه راجع به حیعت قدیم که معروف به حیعت بدلم یوسیه باید بگم تون بگم، است که، اصلا در ادب فارسی فقط اون اون ساختمان جهان و اون دربی هست زمین رو میگیرن مرکز عالم اون بعد هشت تا فلکی هشت دایره تو تو مثل لفته‌های پیاز هست که انو این‌ها به دور این هسته مرکزی به زمینه و ساکنه می‌چرد در هفت فلک اول که به فلک اول اولی، اول اول این پایین پایین دو دفهمی بالتر، سه فهمی بالتر الافه به قول خود ما هفت سیاره هستم هفت سیاره پنج داشت، حقیقتا هم, هم سیارات هم که ابارت هم به ترتیب نزدیکی رو زمین از یکی به خوشید، اتاره دو کنم که زهره بود بعدش زمینی که به جاهش رو دو اتاره، نه، اون ترتیب اونا به هم هفت سیاره پنجت سیارش، اتاره دست و هست و مریخ و مشتری و زحل دو تا دیگر هم قاطعی می‌کنم که اونا سیاره نیستن یکی ماهه ماه سیاره نیست، ماه سطحه بلد، زمین یکی دیگه هم خورشیده، حرکت ظاهری خورشیدو میگرفتن، در ظاهر به نظر شما خرشید رو زمین میگرده درست مثل دوتا ترن که شما سوار یکیش باشید، اینا پلوی هم که اصلا یک حرکت میکنن، چون نمیفهمی خودتون دارین حرکت میکنه یا امید کرده، اگه بخواید اینو بفهمید باید بیرون رو نگاه کنید یه جای ثابت باید در نظر بگید، اما خود میفهمید اگه سال‌ها این خیال می‌کردن که این آفتاب دور زمین می‌گرده در درست این گردش زمین بوده به دور آفتاب و در مقام چهارم، مقام ثبت میشه برای اینکه ماه هم حقیقتا دور زمین می‌گرده ولی اونها دیگه دور آفتاب می‌گردن به هر بار می‌گفتن اول، فلک ماهه این ترتیب ما ماه تیر قسم 8 8 4 numero 1 umrvadas é nem mostrarir فرض این فلک نیموده از که اینا میدیدن که اینا میچرخن بعد فکر کردن چکلی میشه بی هیچ محرکی به چرخه فکر کردن یه اجسامی جسم فلکی جرم فلکی است که اینا مثل نگینی که بر انگوشتر سوار باشن این سیاره ها بر اون فلک سوارن اون فلک میچرخه به دور زمین اینا را با خودش میچرخ بعد تا این هفتا سیاره هست فلک هشتون فلک ثوابته یعنی هایی رو که بشر گیده که اون سیارات تا که حرکت رو ما هم فرق میکنه ولی یه سری چندین هزار ستاره هست که اینا همه با هم حرکت در حقیقت اون هم اصلا دور و نزدیک میشن ولی اینقدر پس داشت دوره که ما اینا رو نزدیک هم میبینم اون همه مثل رو داشتم فلک ثوابت و بعد یک فلک دیگر، فلک نهم در نظر گرفتن که اون رو بشه میگن فلک اطلاس و فلک اطلاس میگن ستاره نیست و فقط شغل فلک اطلاس، فلک نهم این هست که محرک اخلاک دیگه بشه بعد از اون هم نیست دیگر. ادم، فلک این سیستم بعد هشت تا آسمان بوده که ستاره داره دیگه آسمان هشتم مالا همه س... سوابت بوده، کواکب بوده هفت دیگه هم هفت تا که اسم بردم این کار حیعتی زمین رو هم برایش هفت طبقه قائل بوده هفت طبقه زمین میگه که علم حیعت عشق چه علمیه که چرخ هشتم برا، برای اینکه کسی با اشگ میره به مبدل میپیونده دیگه از همه این عالم در میگذره می اینکه علم هیئت آتش چه علمی است که چرخ هشتم که بالاترین فلکی که جرمی درش هست از نظر پستی اون بلندترین دیگه. از نظر پستی زمین هفتم هفت، طبقه هفتم زمین عجب علمی است علم هیئت که چرخ هشتمش هفتم زمین با. و اون می گفتن که محرک اینا به این توجیح افلاک عبارت از این بود که قدرت خداست خداوند امر میکنه کنه عمر و عقل میشه. شی که عقل لطیف ترین چیزیست و اولین این چیزیست که خداوند آفریده نه مرده ده مرتبه عقل عقل اول و عقل دوپم و عقل سهپم و عقل دفهم. بعد عقل که جوهره خیلی خیلی روحانی لطیفی است باز نمیتونه مستقیما به ماده فرمان بزن. بعد نفس فرمان از عقل که نفس یه قدری کدورتش بیشتره از عقل و ولی روحانیتر از جسم و ماده است. عقل به نفس فرمان میده نفس به موجود فرمان بنابراین عقل اول به فرمان الهی به نفس اول میگه نفس اول، اون فلک نهم به حرکت میشه از فلک نهم این حرکت میاد به عقل دبم برطب گایدی سلسله مراتب، عقل دوم به نفس دو و نفس دوم فلک هشته هم بره کرد پایین پایین پایین تا فلکه اول که فلکه غمره، عقل نوهم و نفس نهم اونو به حرکت در میاره. بعد عقل دهم ده و نفس دهم ده اونیش که در عالم خاک در مرکز به تقسیم شده بین همه این موجودا. یه ای جزی از اعضا عقل، یه جزی از اجزای نفس و هر موجودی رسیده. و عقل کل، عقل کل، عقل کل، عقل اول عقل اول گفت با عقل دوم ماهی از سرگنده گردد نیز دوم یا از سرگنده گردد نیز دوم که هرتوش درسته عقل اول، عقل دوم، سلسل مراتب اغول این ترتیب سلسل مراتب اغول و نفوس با افلاک تا برسه به فلک خواب و نحوه حرکتی نام به این ترتیب بوده فقط یه باید داشتن این پنج تا سیاره بوده که مشتری و زحل و مریخ و زهره و خطارت و بیدیدن گاهی از زمین میرن، میرنن گاهی از زمین هم میرنن دیگه همه با هم حرکت این ها حالا اشتباه صاحب کجا هست؟ اشتباه اینه که اینا مرکز در گردشون آفتاب زمین که متحرکه ثابت حساب میکردن اینا دور زمین نمیگشتن فهر آفتاب میگشتن یه وقت با هم می‌رفتن، ساکنان زمین می‌توند عظیم‌الی دارن. اونتها اینا مداراتشون بعض بزرگ‌تره، بعض یا کچی‌تره، یه از زمین عظیم‌الی می‌مدیم، بینیم می اون عظیم‌الی داریم. بنابراین می‌گفتم که سیارات حرکات رجوعی دارن. یعنی بر می‌کرد، بازگشتی دارن. و با به اینا می‌گفتم خمسه متحیره. خودش می‌متحیر بودن؟ <تصفيق> این پنج سیاره میگفتن خمسه متحرکه اونو حرکت ما هم درست کنن درست حساب کنن که حقیقتا دور زمین میگاش حرکت خورشید هم درست حساب میگرد برای اینکه خود نور خورشید میگشت با می دیگه محور رو چون غلط حساب میکردن عواملی که در محاسب اینه که هیچ وقت این پنج سیاره نتونستن حالا اون اورانوس و نپتون اینا رو که ترف نگرفت منظورم ولی این پنج سیاره هیچ وقت نتونه قوانین حرکت چه حساب بکنن در هم خیلی ساده است در نیچه این هست که مبدع حرکت رو غلط میگرفتن و این طالبینی و زایچه و این که بچه میاد در اون لحظه بازی چه حساب کنن که هر کدوم این سیاره ها در کدوم درجه بوده بعد این چه میشه که یک نیچه چند با یکی دیگه شبیه نیست و دانات برای هر آدمی واد زیچ باید واد پاله و واد حساب بکنن واد کتاب بکنن بر اساس این اشتباه قضیه است که مرکز رو جای آفتاب سمین میگرفت این اصل و این علم هیئت و هیئت باتلمیوس و حرفایی که می‌سن این این جزئی اطلاع خاصم بهتون بدم برای اینکه خیلی بیاد هم در شعر فارسی بر بحث کنم همه رفت این چیزایی که شما بخون وقتتون بخون باشه هر نهوم ماه بود کل و زمین بشه به ماه کرد دیگه بله، بله، بله بله بله خدا رو شاید به خواب که میخواد سید بوستانی بخونه سر ارادت ما باستان حضرت دو. خیلی سر اروادت ما و سان حسن که بر سر ما بیمار، مطمئن هدمو گرهاو چون شکنگ و خاوی سمو سمو که در این کار و سبوست خاندری بسا سرا که در این کار خامه خاک سبوست و درست مگر تو شان زدید را چه که میخوایم بازدید کنیم. به سالی در میخوایم بازدید کنیم. به سالی که میخوایم بازدید کنیم. که میخوایم بازدید کنیم. به سالی که که چهایی که توی دیزامون تو در زلامات مراد کهایمیار، رو تو در زلامات مراد, مراد, مراد چرا شروع به در تهاویه، در این زبون داوله ازل ان چولاله داوله خطو بله ارزمونم که آینه از مهر و ماه در برابر رخ دوست گذاشتن بارها حافظ حرشید و ماه رو آینه روی دوست دانست روی اون غزل در نظر بازی ما بیخبران خبران حیرانند من چنینم که نمودم دگر ای عاقلان نقطه پرگار وجود ولی عشق داند که در این داویر سرگرده ها یه فایه پرگار ثابت یه فایدگی های سرگردون بعد این بیت میگه جلوگاه رخ او دیده ی من نیست وقتی آدم به کسی نگاه میکنه تصویر اون آدم در آینه چشم آدم منکس میشه می‌دونید که تا این تصویر نیفته توی آینه چشم ترا چون نمیبینه. میگه جلبگاه رخ او دیده من تنها نیست ما خورشید همین آینه میگردانند. آینه گردان یعنی مشجاته. آینه گردان یعنی کسی که زینت میکنه. آرایشگر. میگه نه جلبه حقونشون. مظهر زیب. جلبگاه رخ او دیده من تنها نیست ما خورشید همین آینه می اینجا جام همون یه نزیر دوست ندیدن اگر چه از ماه مهر نهادم آینه ها در مقابل روفت پیش این یکی اون صاب این دیر رن تس دیر رن با ترکیب مخصوص حافظ بسیار زیبا شده می سر دور سر دور شده شاب کوجا سربون خیل اصلا کلمه گل میدون که ریشه و با هر چیزی که تحکیم بشه موناد اون درخته گلون یعنی درخت درخت یا بوته که ریشه داره خارびون یعنی این خار. که یعنی بوته کدو. یعنی سربون یعنی درخت سر گلون یعنی درخت گل چنربون ناربون این همه هست و به معنی درخت خدا هایی رو اونجا هم که بلا بیتونید ارز کنم که دیر رنسو فرکیب حافظیه و صفت فائلی مرکم مرخمه یعنی دیر سوزاننده ی رن ارز کنم که یه چیزی نداره اینجا غذال هم ارفانیست چنانکه ملاحظه فرمودید غذال فرمودیست بس ها، بس ها، اینه میخواستم بگم این الف رو بهش میگن، الف تعظیم که برای مبالغه میاد بس ها، سرا یعنی چه بسیار سرها تو چهار مقاله آماده بزرگا مردا که بو علیسی بود یعنی چه بزرگ مرد بزرگا مردا الف تعظیم و تفخیم بهش با، بساسه را که در این پاکانه خاک ثبوت خب دیگه از علماء داخترها بخوندن بله اگرچه رجب این شعر به خصوص نیست چون نبشو. از تجلیس ناقص صحبت میکرد آیا چیزیم به اسم تجلیس کامل داریم تجلیس دیگه یه کامل چون نمیزد رود و رود تجلیس گفت که مرجان لب لعل تو مرجان مرا خوت یا خوت نه هم نام لب لعل تو یا خوت قربان وفاتم به وفاتم گذاری کن تابوت مگر بشترم از رخمه تا خوت اونا تجلیس تجلیس تام بشم تجلیس تام صد طور تجریس دیگه هم هست تو های صناحات شعری یک یعنی هرپا هم می‌کنین توچو بکنید هم از تجریس متعرف نمی‌نمی‌شود چون صد تا که علم این چیز رو ندارید مرز کنم که کدور اینکه از علم‌ها دارت طلب هست؟ کدور نیست؟ دارم امید عاطفتی از جناب, جناب دوست دارم امید عاطفتی از جناب دوست کردم جنایتی و امیدم به افد اوست دانم بگذر از سر جرم من که او گرچه پرید بشه است ولیکن فرشت خوست ولیکن ولیکن فرشت خوست چندان گریست این که هرکس که برگذشت چندان گریست که که هرکس که برگذشت در عشق ما چودی روان گفت که این چه جور گفت کین چه جوز؟ گفت، کین چه جورش هیچ است اون دهانو نبینم از اونشون موی است اون نیا است یا مویاس آ بجو موی است مو همین است مویاس اون که اون چه جور داورم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت از دیدن که چون نرفت از دیدم چون استرپان دارم عجب زنقش خیالش, خیالش که چون نرفت از دیدم که دم به کار دم کار بی گفت و تو دل را کشد همی کشد بی گفت و تو دل را کشد با ظلف دلکش تو چرا اون یه گفتگوست میبینید که گفتگو این طرف گفتگو اون طرف دل را میکشد دلکش اینا تجلسه طالق تا... میتخازدی این گفتگو ای زلف تو دل را همین کشد با زلف دلکش تو چرا اون یه گفتگوست بعد عمر ایست هاوز زلف تو اون در مشام, دل در مشام دل من در مشام دل من دل مشام حافظ حافظ. بده... حافظ حافظ بده است حال پریشان تو ولی بر بوی زلطه یار پریشانیت بوی زلطه یار پریشانیت نکوست نکوست بوی به بوی یعنی به هوای به بوی آن که شبیه در حرم بیا هزار باگیه سهل است به قیمان یعنی با آرز روی آنکه به هوای آنکه. حالا اینجا ملزه کنید؟